عزیزان این مایه مسررته که شما وفادارانه در مطالعه کلام خدا با ما همراه هستیم. ما در حاله مطالعه مزامیر هستیم که کتاب سرودهای قوم خداست. در این سرودنامه ما سرودهای پرستشی و هسته هایشی رو میبینیم که کمک میکنه یاد بگیریم چطور خدای خود رو به شایستگی بپرستیم. چیزهای زیادی هست که از این سرودنامه قدیمی میتونیم یاد بگیریم. پس به دقت به درس امروز از کتاب مزامیر گوش کنید تا با هم دیگه یاد بگیریم چطور پرستش کنیم. این شما و این معلم شما. ای تمامی روی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید. خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیایید. بدانید که یهو و خداست او ما را آفرید. ما قوم او هستیم و گوسفندان مرتع او. به دروازه های او با همد بیایید و به های او با تسبیح او را حمد گویید و نام او را متبارک خانید زیرا که خداوند نیکوست و رحمت او ابدی و امانت وی تا ابد ما ضمن بررسی کتاب مزامیر به مزامیر مرد برکت یافته نگاه کردیم که مزامیر موعظه‌ای بودند و به بعضی از مزامیر دعایی هم نگاهی انداختیم نوع سوم مزامیر مزامیر پرستشی هستند یادتونه که گفتیم کتاب مزامیر سرودنامه قوم خدا در عهد قدیم بود. این سرودنامه بخش اصلی پرستش های اونها بود. محققین بر این باورند که مزمور 150 به همسرایانی اشاره میکنه که در پاسخ به بقیه مزامیر میخونند. اونها مزمور 23 رو می و بعد مزمور 150 رو به عنوان مناجات می یا پاسخ به اون، اونها مزمور 27 رو می و بعد صد و پنجاه رو می خوندن. از اونجایی که این مزامیر بخش اصلی تجربیات پرستشی اونها بود، وقتی ما این مزامیر پرستشی رو بررسی می کنیم، در واقع دیدگاهی از کتاب مزامیر پیدا می کنیم. مزمور یک مزمور کاملا پرستشیه. اگرچه خیلی کوتاهه و فقط پنج آیه کوتاه داره، اما این مزمور به ما نشون میده که پرستش یعنی چی؟ دقیقاً گفته که پرستش یعنی آمدن به حضور خدا و میگه که حضور الهی خدا وجود داره و آمدن به حضور خدا اساس پرستش هست. آمدن به حضور خدا ربطی به خدمت در گروه پرستشی نداره. شما میتونید در ساعت پنج صبح در خانه خودتون به حضور خدا بیایید. جایی که کسی جز شما حضور نداره. پرستش محرمانه میتونه ارزشمندترین نوع پرستش باشه وقتی که شما به حضور خدا میایید. مزمور صد به عنوان یک مزمور پرستشی نه تنها پرستش رو شرح میده بلکه همینطور به ما میگه چطور خدا رو بپرستیم در این متن داوود به ما استعاره زیبایی میده داوود به ما میگه که پرستش مانند آمدن به حضور یک پادشاه هست در اون ایام وقتی شما با شاه قرار ملاقات داشتید شما باید به قصر محل اقامت شاه میرفتید از دروازه های بزرگی که منتهی به قصر میشد و بور میکردید اگر اون پادشاه بزرگی بود از راهروهای طویلی و بور می کردید بعد وارد تالار وسیعی می شدید که سربازان در دو طرف صف کشیده بودند. اونجا دو در بزرگ وجود داشت و شما فکر می کردید که حالا شاه رو خواهیم دید اما اون درها به راهروهای طویل دیگری باز می شدند و بالاخره به دو در بزرگ دیگه می رسیدید که شاید با طلا و نقره پوشیده شده بود و به حضور حاکم باز می شد وقتی که وارد حضور پادشاه از اهمیت او خیلی تحت تأثیر قرار می گرفتید داوود وقتی به ما میگه چطور پرستش کنیم از استعاره استفاده میکنه داوود وقتی به ما میگه چطور به حضور خدا بیاییم از استعاره استفاده میکنه در تفسیر و خلاصه استعاره داود داوود او چنین چیزی گفته برای آمدن به حضور خدا باید از دروازه های شکرگزاری عبور کنید بدین معنی که برای شروع پرستش باید به خاطر تمامی برکاتتون خدا رو شکر کنید. شکرگزاری درمان روحی حیرت انگیزیه. شکرگزاری در سرتاسر سر کتاب مقدس به ما فرمان داده شده. در بسیاری جاها در کتاب مقدس گفته شده که به زندگی از دریچه سپاسگزاری نگاه کنید. سپاسگزاری میتونه رفتار شما رو تغییر بده چون سپاسگزاری به طور غیر ارادی ذهن شما رو از چیزهای منفی برمیگردونه و تمرکزتون رو بر چیزهای مثبت قرار میده. اگر از شکست بزرگی رنج می کشید این نصیحت خوبیه مثلا اگر شما معلول هستید به جای اینکه برای چیزی که ندارید قصه بخورید به خاطر چیزهایی که هنوز دارید خدا رو شکر کنید این درمان خوبی برای کسی هست که معلولیت داره اگر به خاطر عضوی که از دست دادید قصه بخورید وضعیتون بدتر و بدتر میشه و غرق در افسردگی میشید اما اگه به خاطر چیزهایی که دارید و اینکه هنوز میتونید خودتون غذا بخورید میتونید خودتون لباس بپوشید و به خاطر قابلیتایی که هنوز دارید خدا رو شوک کنید این ارزش درمانی زیادی داره در مزمور 100 گفته شده که شوک‌گذاری میتونه حیات رو وارد پرستش کنه شوک‌گذاری در یک منتهی به حضور خدا میشه بنابراین پرستش خودتون رو با خوندن سرودهای شوک‌گذاری به حضور خدا ببرید داوود در تمثیل زیبایی میگه که دروازه‌های شوک‌گذاری منتهی به تالار پرستش میشن تا حالا به این واقعیت رسیدید فقط برکاتتون رو یکی یکی نام ببرید و از کاری که خداوند میکنه تعجب خواهید کرد وقتی مدتی این کار را انجام بدید متوجه میشید که به بعد دیگری انتقال پیدا میکنید نه تنها از او تشکر میکنید او رو میپرستید بلکه او رو با حمد میپرستید شما با خدا در مورد خدا صحبت میکنید و فقط به خاطر برکاتتون از او تشکر نمیکنید در ادامه اون استعاره تالارهای پرستش به حضور خدا منتهی میشند. و با خواندن سرود دری به سوی حضور خدا باز میشه به این دلیل که موسیقی بخش مهمی از پرستشه موسیقی معجزه بزرگیه که خدا به ما داده تا اینکه بتونیم راهی برای اظهار چیزهای بیان نشدنی و احساساتمون در موقع پرستش پیدا کنیم زمانهایی در سفرهای روحانیمون وجود دارن که ما نیاز داریم چیزهای بیان نشدنی رو اظهار کنیم راستش رو بگم من ایمان دارم که مفهوم زبان زبانها همینه. به اعتقاد من زبان زبانها دقیقاً اینه. در حضور خدا زمانهایی هست که وقتی مردم پر از روح هستند و با پرستش هاشون سرشار از روح میشند، اونها احساساتی بیان نشدنی دارند. به اعتقاد من در بعضی موارد خدا به قوم خودش زبان زبانها رو میده که بتونن چیزهای ناگفتنی رو بیان کنند. صحبت به زبانها راهی برای اظهار ناگفتنیها در پرستش است. من گمون نمی کنم که خداوند به هر کسی عطیه زبانها رو بده. با یک دوست کاریزماتیک در مورد عطیه زبانها صحبت می کردیم. به او گفتم که دیدگاه من از این عطیه اینه. او گفت آیا تمامی کلمات پرستشی که میدونی در خلوت دعاییت استفاده کردی؟ این چالش خوبیه اینطور نیست؟ آیا تمام کلام پرستشی که میدونید در خلوت دعاییتون استفاده می کنید؟ شاید اگر از تمامی کلمات استفاده کنید، خدا به شما عطیه زبان رو بده. برخلاف بعضی ها من گمون نمیکنم که عطیه زبان یک اعتبار روحانی برای یک ایماندار باشه. اما ایمان دارم که عطیه زبان ها معجزه سوی خدا هست خدا می تونه اون عطیه رو بده تا مردم چیزهای بیان نشدنی رو طور دیگری بیان کنه اما خدا همیشه به همه ما موسیقی میده موسیقی وسیله ای هست که توسط اون ما میتونیم چیزهایی رو در پرستشمون ابراز کنیم که غیر قابل بیان هستند داوود چیز زیبایی به ما میگه که موسیقی در پرستش معجزه‌ایه که ما رو به حضور خدا هدایت میکنه. مطالعه موسیقی در کتاب مقدس خیلی جذابه ما وقتی کتاب تواریخ رو بررسی کردیم دیدیم که داوود گروه ارکست و همسرایانی داشته که از چهار هزار نفر لاویان تشکیل شده بود و اینها کاری جز تمرین سرود و نواختن آلات موسیقی که داوود برای قوم خدا میساخت نداشتند هدف از تربیت همه اون موسیقیدان های لاوی پرستش خداوند بود. میانگین یک ارکستر امروزی از حدود 110 نفر تشکیل شده. ارکستر و گروه کوری رو تجسم کنید که از هزار نفر تشکیل شده که همشون موسیقیدان های هستند هستند. چه صدایی میتونه از این ارکستر بیاد؟ در مکاشفه گفته شده که در اطراف تخت خدا در آسمان خدا حتی کاری بزرگتر انجام خواهد داد. کتاب مکاشفه به ما میگه که ما سرودهای ای خواهیم خواند ما نوعی از موسیقی رو از آسمان تجربه خواهیم کرد که هرگز بر روی زمین تجربه نشده. چون خدا به ما سرود ای خواهد داد. به آرزو و نیازی که برای بیان چیزهای بیان نشدنی در اطراف تخت خدا در آسمان خواهیم داشت فکر کنید. برای چنین موقعیتی خدا نوع دیگری از موسیقی به ما خواهد داد که هرگز نظیرش نزیرش رو من چون خیلی به موسیقی علاقه دارم، خیلی حیجان دارم و منتظرم که اون سرود تازه رو بخونم. در مزمور صد وقتی داوود به ما میگه که چطور پرستش کنیم، این رو هم به ما میگه که انتظار میره وقتی ما پرستش میکنیم چه اتفاقی بیفته. به گفته داوود وقتی ما به حضور خدا میاییم چیزهایی هست که ما تجربه خواهیم کرد و چیزهایی هست که در حضور خدا خواهیم فهمید که به هیچ وسیله دیگری نمیتونیم بفهمیم. مثلا داوود میگه در حضور خدا خواهیم فهمید که او خداست کسانی که حضور خدا رو تجربه کردن این رو میدونن خداوند خدا هست اینطور خواهند فهمید که ما گوسفندانی در مرتع او هستیم او شبان هست و ما گوسفندیم به گفته داوود همینطور در حضور خدا این رو خواهید فهمید که خداوند نیکو هست. بزرگترین دروغی که شیطان سعی میکنه ما رو وادار کنه باور کنیم اینه که خداوند نیکو نیست او وحشتناکه و نمیتونیم به او اعتماد کنیم خیلی ها این رو باور دارند به این دلیل که اونها زندگیشون رو تسلیم خداوند نمی کنند اونها عقیده دارند که اگر زندگیشون رو بی قید و شرط به خدا بسپارند اونها به بدترین جایی که میشه تصور کرد خواهند رسید بدترین جایی که من میتونم تصور کنم جنگل هست وقتی که در ایمان جوان بودم فکر می اگر بی قید و شرط به خدا تسلیم بشم از جنگلی در جایی سر در میارم این بدترین چیزی بود که میتونستم تصور کنم این دروغ بزرگیه این مزمور میگه خداوند نیکو و در جای دیگه میگه اراده خدا نیکو و عالیه پولس رسول ما رو به چالش کشیده که اراده نیکو پسندیده و کامل خدا رو برای خودمون بفهمیم اراده خدا همیشه برای ما نیکو چون خدا نیکو خیلی ها این رو باور ندارن چون اونها هرگز در حضور او نبودن اما اگر راهی به سوی حضور خدا پیدا کنیم مطمئنا یک چیزی رو خواهیم فهمید خدا نیکو من میدونم خدانی بر طبق این مزمور کوچک همینطور به این آگاهی می رسیم که خدا میخواد تمامی مردم در تمامی سرزمین ها بدونن که خدا نیکو هست. تمامی روی زمین عبارت که آیه یک مزمور با اون شروع میشه خدا میخواد که هر کسی در تمامی روی زمین بدونه که پرستش چیه خدا میخواد همه بدونن که آمدن به حضور خدا چیه و بانگ شادی برآوردن در حضور خدا چیه خدا میخواد که همه اینو تجربه کنن. آخرین کلمات آخرین آیه این مزمور نسلا در نسل هست که معنیش اینه خدا میخواد تمامی نسل ها در تمامی سرزمین ها هر کسی در هر کجا بدونن که پرستش در حضور خدا یعنی چی. بزرگترین خادمین در تاریخ کلیسا کارگزاران بزرگ خدا همه قبل از اینکه خادمین خدا بشن پرستنده های خدا بودن. پولس رسول این انگیزه رو از کجا پیدا کرده که بزرگترین خادمی بشه که تاکنون کلیسا به خودش دیده او تا به آسمان سوم برده شد او میگه که عیسی قیام کرده رو دید او سالهایی رو در عربستان با عیسی مسیح سپری کرد در حضور او او رو پرستید این انگیزه او برای بزرگترین خادم خدا شدن بود اول یک پرستنده بزرگ خدا بشید و شخصا به حضور خدا برسید بعد برای کار خدا خواهید رفت که بسیار مفید و ر سمر خواهید بود. این یک حقیقت الگویی هست که در این مضمور کوچک تعلیم داده شده. وقتی اونطور که داوود توصیف کرده به حضور خدا بیایید، در حضور خدا چیزهای مشخصی یاد خواهید گرفت. یکی از چیزهایی که خواهید فهمیدینه که همه باید به حضور خدا بره چون خدا میخواد تمامی مردم در سرتاسر سر زمین از هر نسلی بدونن که واقعیت پرستش خدا چیه؟ به این دلیل که وقتی ما کتاب انبیا رو بررسی میکنیم، میشنویم که اشعیا که تجربه بودن در حضور خدا رو داشت میگه من حاضرم خداوندم مرا بفرست. این سوال همیشه پرسیده میشه که کی حاضره بره؟ او میگه من حاضرم منو بفرست. بزرگترین کسانی که برای کار خدا میرند بزرگترین کسانی هستند که به حضور خدا میاند. به قول داوود ما در تجربه پرستش به این آگاهی میرسیم که مشتاق میشیم خداوند رو با شادمانی خدمت کنیم. ما خدا رو به این دلیل خدمت نمی که چون این یک وظیفه هست، چون این یک قاعده هست که بر عهده ما گذاشته شده. ما از تجربیات پرستشیمون با این اشتیاق بیرون میاییم. من میخوام برم و خداوند رو با شادمانی خدمت کنم. مزمور صد به ما میگه که پرستش چیه، چطور بپرستیم و وقتی میپرستیم چه اتفاقی میفته و نتایج پرستش قرار چی باشه. مزمور صد یک مزمور پرستشی زیبا هست. مزمور پرستشی بزرگ دیگه مزمور سد و هفت هست در مزمور سد و هفت نصیحت شده که پرستش کنید اکثر مزامیر پرستشی هم همین کار رو میکنن اونها نه تنها مزامیر پرستشی هستند بلکه به ما نصیحت کنند که باید پرستش کنیم مزمور سد و هفت طولانی هست و به پاراگراف تقسیم شده اما موضوعی که در این مزمور هست سرودی با پنج بند گردان هست و عبارت از اینه خداوند را حمد بگویید زیرا که او نیکوست و رحمت او باقی است تا عبدالآباد. فدیه شدگان خداوند این را بگویند که ایشان را از دست دشمن فدیه داده است. آنها باید از خداوند به خاطر محبت پایدار و کارهای ای که برای انسان انجام داد شب گذار باشند. این موضوع مزمور سد هست. انسانها باید خداوند را به خاطر نیکویی بپرستند و به خاطر نجاتشون شکر کنند. این پیغام واقعی این مزمور است. وقتی که عیسی ده جزامی رو شفا داد، فقط یکی برگشت که از او تشکر کنه و اون یک نفر سامری بود. عیسی گفت: آیا من ده نفر رو شفا ندادم؟ پس اون نه نفر بقیه کجا هستند؟ من فکر میکنم که عیسی به ما میگه حدود 90 درصد کسانی که تجربه نجات رو دارن، بر نمیگردند و به خاطر نجاتشون از من تشکر نمی‌کنن. اونها هرگز پرستنده نمیشن. اونها فقط گیرنده هستن. وقتی اونها نجاتشون رو تجربه کردن، هرگز برنگشتند که از عیسی تشکر کنند. اون سوالی که پرسید پس نه نفر کجا هستند میتونه خطا خطاب به ما باشه. مزمور هفت اشاره به 90 درصد داره که هرگز از خداوند به خاطر نجاتشون تشکر نمیکنند. بارها و بارها این مزمور بزرگ نصیحت میکنه که انسانها باید از خداوند تشکر کنند. مخصوصاً فدیه شدگان خداوند. اونها باید اینطور بگند. بازخرید همونطور که در کتاب رود دیدیم، به معنی دوباره خریداری کردن و بازگرداندن به حیات از زندگی گناهالوت است. شاید شما یه موقع به خدا تعلق داشتید در آدم همه ما به او تعلق داشتیم بعد از خدا دور شدیم و لازم بود که بازخرید بشیم و دوباره به خدا برگردانده بشیم معنی بازخرید کردن اینه این بازخریدی که به خاطرش ما باید شوک کنیم در هر پنج پاراگراف این سرود بزرگ هایی بخش توصیف شده اولین پاراگراف نجات را از این جنبه توصیف میکنه که ما گم شده بودیم مثل گوسفندی که سرگردان شده بود بر طبق پاراگراف اول ما در بیابانهای بی آب و علف سرگردان بودیم گرسنه و تشنه تا اینکه جانهای ما کاهیده شد بعد میخونیم که در اون تنگنا نزد خداوند فریاد کردند و او آنها را از پریشانی نجات داد و اون نجات اولیه یا بازخرید ما رو به تصویر میکشه مانند زمانی که مثل گوسفند گم شده بودیم نزد خدا برگشتیم و او ما را از سرگردانی و گرسنگی و تشنگی نجات داد بعد او ما را به راهای درست هدایت می کنه، مثل بنی اسرائیل که اونها را از سرزمین مصر نجات داد و به سرزمین وعده هدایت کرد در آیه هشته این مزمور بعد از اینکه اولین مرحله از نجات رو شرح میده ده مزمور نویس ما رو اینطور تشویق میکنه اونها باید از خداوند به خاطر محبت پایدار و کارهای ای که برای انسان انجام داد شوق باشند باشن. چهار بار در این مزمور بزرگ، مزمور نویس فریاد میزنه که انسانها باید برگردند و از خدا به خاطر نجاتشون تشکر کنن. در دومین بندگردان این مزمور نجات، مزمور نویس نوع دیگری از گمگشتگی رو نشون میده. او انسانهای نجات یافته ای رو شرح میده که در مقابل خدا سرکشی می اونها نجاتی یافتند بازخرید شدند، اما مانند پسر گم شده سرکشی می کنند و به کشور دور میرند. او میگه این مردم آخرشون کند و زنجیر هست، چون که در مقابل کلام خدا اسجان کردند. بنابراین او جانهای ایشان را زیر بار مشقت خم ساخت، اونها زمینگیر شدند و کسی نبود که کمک کنه. درست مانند پسر گم شده که وقتی به کشور دور رفت، وقتی همه چیزش رو خرج کرد، و ور شد هیچ کس به او چیزی نداد او مطلقا بیچاره شد به انتها رسید و تصمیم گرفت که نزد پدرش برگرده. ما میبینیم که این مردم هم همونطوری هستند اونها را از تاریکی و ظلمت بیرون آورد و از هر قول و زنجیر اسارت آزاد کرد به عبارت دیگه خدا اونها رو برای دومین بار نجات داد درست مثل پسر گمشده اونها در اسارت سرکشی خودشون محبوس بودند که نتیجه عصيان خودشون و استراف کاری‌هاشون بود بعد خدا اونها را از تجربه خوکدانی نجات داد در آیه پونزده دوباره همون بندگردانی رو داریم که چهار بار در این مزمور زیبا تکرار شده اونها باید از خداوند به خاطر محبت پایدار و کارهای ای که برای انسان انجام داد شکرگزار باشند سومین بند از این سرود زیبای نجات نوع دیگری از گم رو شرح میده در چهار 4:18 عیسی ای کرد که منظور و هدف از خدمتش رو اعلام میکنه. به نقل از اشعیا ایسا گفت: روح خداوند بر من است زیرا مرا مس کرده تا فقیران را بشارت دهم. عیسی توضیح میده که منظورش از فقیران چیه؟ او گفت که بینایی را به نابینایان اعلام خواهم کرد و رهایی را به اسیران اعلام خواهم کرد و ستم دیدگان را رها خواهم کرد. این مفهوم چیزی بود که لغا در چهار هیجده موعظه کرد. شما میتونید انجیل لغا رو بخونید و ببینید عیسی چیزی رو معجزه می کرد که انجام میداد با خدمت تعلیمش او کوران رو بینا کرد با چیزی که امروز بهش خدمت مشاوره میگیم اسیران از را آزاد کرد و با شفای بیماران ستمدیدگان این دنیا را آزاد کرد اون سه دسته از گمشدگان در و 107 توصیف شدهاند. در اولین پاراگراف مزمور شما شرحی رو میبینید از قرآن که مانند گوسفند هستند چون راه خروج از گمگشتگیشون رو نمیبینن اونها سرگردان هستند. اونها دست چپ و راستشون رو نمیشناسن. این شرح خوبی برای کوری روحانی هست. در پاراگراف دوم شما اسیران رو میبینید، کسانی که آزاد نیستن. اکثر مردم آزاد نیستند و کاری رو که میخوان نمیتونن انجام بدن. اونها کاری رو کنند که مجبور به انجامش هستند. اونها تحت فشار هستند و مجبورند با رفتارها و عادتها کنترل بشن. میتونیم بگیم که اونها واقعا آزاد نیستن. عیسی هرگز از کنار کسانی که آزاد نبودن بی اعتنا عبور نکرد و اونها را از اسارت‌هاشون رها کرد. این آزادی هست که در بند دوم این سرود رهایی به تصویر کشیده شده. بند سوم مزمور 107 چیزی رو به تصویر کشیده که عیسی به اونها ستمدیدگان یا کوبیدگان گفته. این مردم به خاطر گناهان خودشون کوبیده شدند. مزمور نویس میگه بعضی به خاطر روش گناهالود خود رنج میکشیدند و به سبب شرارتای خیش در عذاب بودن. گاهی اوقات رنج های ما نتیجه گناهان ماست، همونطور که در کتاب ایوب دیدیم، همیشه نه، اما گاهی رنج های ما به خاطر گناهانمون هست. سومین بند از این سرود بزرگ میگه راههای اسیانگرانه و تقصیرات اونها اونها رو به عذاب دچار کرد. بعد از اون میگه در تنگی خیش نزد خدا فریاد برآوردند. و خدایشان را از تنگیهایشان نجات بخشید ما میخونیم که او با کلامشون ها رو شفا داده از مرگ رها کرد مرگی که خود اونها مسببش بودن اینجا ما تصویری از خدا داریم از ناجی بزرگ که قومش رو برای سومین بار نجات میده تمامی این مضمور شرحی از نجات هست مزمور صد و هفت شرح زیبایی از این هست که خدا چطور قومش رو نجات میده میگه او کلامش رو فرستاد و اونها رو شفا داد و این حقیقت حیرت انگیز دیگری در مورد کلام خداست. آیا می دونستید که کلام خدا قدرت داره که شفا بده؟ کتاب مقدس قدرت داره که جانها رو تازه کنه همونطور که در مرزمور 19 دیدیم اون قدرت داره که شفا بده. من به عنوان یک شبان اون رو دیدم بعد از اینکه که کلام خدا رو با مردم در میون گذاشتم بعد از مدتی شاید در یک جلسه مشورتی دیدم که کلام خدا مردم رو شفا میده مرد جوان باهوشی رو میشناختم که در بیمارستان روانی بود بیش از هزاران دلار خرج روی دست خانواده‌اش گذاشته بود ما همین دوره بررسی کتاب مقدس رو داشتیم و میتونستیم که نوارها و یادداشت‌هایی برای او به بیمارستان بفرستیم او کتاب مقدس را از پیدایش تا مکاشفه مرور کرد من هرگز شاهد بهتری برای این آیه که میگه او کلامش را فرستاد و اونها را شفا داد مثل او ندیدم کلام خدا عملا اون مرد جوان رو شفا داد بعدها او از دانشکده فارغ تحصیل شد و رئیس مدرسه خودش شد با مطالعه کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه کلام خدا او رو شفا داد او الان دکتراش رو گرفته و 20 سال هست که کتاب مقدس رو می میکنه عملا هزاران نفر به وسیله خدمت او تبدیل شدند فقط به خاطر اینکه او با کلام خدا شفا یافت. سومین بند از مزمور سده هفت شفای کوبیدگان رو شرح میده. اونها دست کم گاهی اوقات به خاطر سرپیچی های خودشون کوبیده شدند. اما دوباره در آیه 21 باز همین نصیحت رو میبینید که وقتی خدا کوبیدگان رو نجات میده میگه پس آنها باید خداوند را به خاطر محبت پایدارش و کارهای ای که برای انسان انجام داده شک کنند. همه کسانی که خدا اونها را نجات داده لازمه که از این نصیحت که در ابتدای این مزمور آمده اطاعت کنند چون این گویان فدیه شدگان خداوند خداوند را سپاس گویید زیرا که او نیکوست اگر از کوری گناه آلودتان نجات یافتید این طور بگید. خداوند نیکو اگر از اسارت گناه آزاد شدید این طور بگید. خداوند نیکو اگر از کوبیده شدگی روحانی نجات یافتید این طور بگید. خداوند نیکوست به سوی خدا بازگردید و از او به خاطر نجاتتون تشکر کنید یک نوع دیگه از نجات در این مزمور هست که بسیار زیباست این بار مزمور نویس از نجات قوم برکتی یافته صحبت میکنه من آدم های زیادی مثل این رو نمی شناسم اما این پاراگراف شرحی از کسانیه که به های دریا میرند و کار خدا و عجایب او رو در اعماق میفهمند اونها در آبهای بزرگ تجارت کنند. این تصویری از کسانی که عطیه ایمان دارند هر کسی که نجات یافته ایمان نجات بخش داره اما بعضی ها ایمانی دارند که فراتر از ایمان نجات بخش میره اونها عطیه ایمان دارند اونها این توان رو دارند که به خدا در کارهای بزرگ اعتماد کنند اونها به آبهای عمیق میرند و منتظر کارهای خدا به طریقی عمقی و قدرتمند میشن اونها به ندرت زندگی آسونی دارند شبان من مردی بود که عطیه ایمان داشت. من گاهگاهی می دیدم که عطیه ایمان او ظاهر می شد. یک بار دیدم که او در خیابان بالا و پایین می رفت و آشکار بود که به خاطر فشار زیادی بهت زده بود. از او پرسیدم مشکل چیه؟ او جواب داد من در رویام یک مدرسه زیبای مسیحی رو دیدم که اونقدر عظیم بود که میشد از این خیابون اون رو دید. تمام چیزی که من می دیدم یک بود. اما او یک مدرسه دیده بود با ایمان او رؤیای اون مدرسه رو دیده بود اگر امروز از اون خیابون بگذرید یک مدرسه بزرگ زیبای مسیحی رو خواهید دید چون که شبان منعتیه ایمان داشت و قبلا اون مدرسه رو دیده بود در فاصله زمانی این رؤیا و ساخته شدن مدرسه او آبهای عمیقی رو تجربه کرد این نوع ایمان در بند چهارم مزمور 107 به تصویر کشیده شده چیزی که شبان من تجربه کرد در این مزمور به عنوان تجارت در آبهای عمیق و اثبات عجایب خدا در عمق‌ها شرط داده شده. به گفته مزمورنویس خدا گاهی طوفان‌های شدیدی می‌فرستد تا کسی رو که آتیه ایمان داره آزمایش کنه. طوفان‌های عظیم موج‌های بزرگی تولید می‌کنه که تا به آسمان میرند و دوباره به عمق‌ها برمی‌گردند. در این محلکه جانی برای اونها نمیمونه و مانند مستان میفتند و بلند میشند و فکرشون به جایی نمیرسه بعد وقتی ایمانشون آزمایش شد وقتی نزد خدا فریاد برآوردند خدا طوفان را آروم میکنه و اونها را از طوفان بیرون میاره و اونها را به بندرهای امن شدایت میکنه من فکر میکنم که این تصویر زیبایی از یک مرد حقیقتاً برکت یافته هست که عطیه ایمان داره به خاطر این عطیه ایمان او در آب قدم میزنه و شروع به غرق شدن میکنه و نزد خدا ناله میکنه و خدا او رو نجات میده و هدف ایمان او رو به او میده. بند پنجمی هم هست که جمبندی و خلاصهی پیغام این مضمور هست. این بند خلاصه راههایی رو ش میده که خدا در زندگی قوم نجات یافتهش کار میکنه. ما میخونیم که میگه بیابان ها را به برکه های آب و زمین های خشک را به چشمثار تبدیل میکنه. زمان هایی هست که خدا به قومش برکت میده، و زمانهایی هست که اجازه میده برکات اونها کم بشه و با ظلم و پریشانی و قصه اونها رو زمینگیر میکنه به عبارتی گاهی زندگی شخص نجات یافته زمانی میتونه مانند رودخانه زیبا و چشم بشه که تبدیل به بیابون شده و گاهی زندگی شخص نجات یافته مانند بیابانی هست که تبدیل به حوزهای آب و یا چشمه شده خدا مرتبا این کارها رو میکنه چون قومش رو آزمایش میکنه اون قومش رو تایید میکنه او قومش رو به رابطه عمیقتر با خودش می رسونه و در انتهای این سرود بزرگ رهایی مضمور نویس میگه سالان این را می بینند و شادمان میشن. آیا فشار و قهطی همیشه یک فاجعه است؟ آیا همیشه این وقایه یک مصیبت هستند؟ وقتی انبیا را بررسی کنیم خواهیم دید که خشکساالی یا قحتی همیشه یک مصیبت نیست. به نظر میرسه که ابزار مورد علاقه خدا برای وادار کردن قومش به زانو زدن و رساندن آنها، به یک بیداری روحانی اینه که دوره رشد اونها رو قطع کنه و یک خوش‌سالی بیاره. درهت قدیم وقتی قوم خدا از خدا برمیگشتند، خدا مانع رشد هر چیزی میشد. بعد از اون قوم خدا در مقابل خدا سجده میکردند و بعد خدا باز هم اون بیابونها و زمینهای خشک رو تبدیل به چشمه‌های آب میکرد آخرین جمله از این سرود زیبا میگه هر که حکیم هست در این امور بیاندیشد و در های خدا تأمل کند. اگر شما به لحاظ روحانی حکیم باشید، اگر بصیرت روحانی داشته باشید، خواهید دید که گاهی وقتی خدا به قحطی و یا در روزگار ما به بحرانها و رکود اقتصادی اجازه میده و باز دوباره برکت میده، خواهید فهمید که تمامی این دوره اظهار محبت خدایی مهربان هست. در این سرود زیبای نجات بندهگردان این هست، پس آنها باید خداوند را به خاطر محبت پایدارش و کارهای فوغالدی که برای انسان انجام داده شکر کنند به همه تاریخهایی که خدا شما را نجات داده فکر کنید خدا شما را وقتی مثل گوسفند کوچکی بودید که دست راست و چپتون رو نمیشناختید از کوری روحانی نجات داد آیا تا حالا به خاطر این نجات از خدا تشکر کردید؟ گاهی شاید مثل پسر گمشده در مقابل خدا سرکشی کردید و از خدا برگشتید وقتی او دوباره شما را نجات داد و به سوی خودش برگردون آیا تا به حال به خاطر اون نجات از او تشکر کردی؟ شاید شما گناه و کوبیدگی رو تجربه کردید و خدا از این تجربه استفاده کرده تا شما را به رابطه‌ای عمیق‌تر با خودش برسونه. آیا تا حالا به خاطر این نجات از او تشکر کردید؟ شاید خدا به شما عطیه ایمان داده و به شما تجربیات بزرگی از ایمان داده که به وسیله اون خودش رو به شما ثابت کرده. به خاطر این نجات از او تشکر کردید؟ روش دیگری که میتونیم این مزمور رو خلاصه کنیم اینه که بگیم این مزمور بر راه های خدا متمرکزه که ما رو از آشفتگی ها، از بندها، از هماغت ها و از راه های و از بحران های ایمان و از خودشیفتگی نجات داده. تا حالا به خاطر تمامی این نجات ها از خدا تشکر کردید؟ این نصیحت مزمور صد و هفت هست که به ما میگه خدایی رو بپرستیم که ما رو نجات داده و از های و وارد بشیم. و از تالارهای پرستش عبور کنیم و به حضور خدایی بریم که ما رو نجات داده مزامیر صد و صد و هفت و صد و پنجاه رو بخونید و حفظ کنید و همراه با مزمور نویس خدا رو بپرستید عزیزان شکرگزاری و ستایش ابزارهای ضروری برای پرستش خدا هستند ما چیزهای زیادی داریم که با بعد باشیم امیدواریم که این درسها شما را به خدا نزدیکتر و در ایمان تون قوی تر کنه، متشکرم که دانشجوی وفاداری بودید و در این کلاس ها با ما مشارکت کردین. چون ما میدونیم که وقتی شما در ایمانتون رشد میکنید، زندگی شما و خونواددهتون تبدیل میشه و زندگی جامعتون تغییر پیدا میکنه. ما منتظر ابدیت هستیم. زمانی که قادر خواهیم بود با همدیگه خداوند رو بپرستیم و به خاطر تمامی کارهایی که برای ما کرده و میکنه شکر کنیم. تا برنامه بعدی، امیدوارم که قلبهای شما آکنده از شکر گذاری و ستایش باشه و با لبهای خود خداوند رو بپرستید.